بسم الله من الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام و سيدنا محمد الله علیه و آله و و اصل در مبحث حجیت زواهر چون بنا رو استاد رو که تقره کتاب اصطاد جورو داریم ایشان در ذیل مرحس حجیت مطلبی رو فرموندن که بیشتر به مقدمه بحث حجیت زواهر نکنید لذا ما این زیل رو در مقام بحث مقدم کردیم بر اصل بحث ایشان شون فرموندن که هر لحظی تا دلالت داره لحظها چامله که امده هم بشن. دلالت اول دلالت تصوری بود مجلور تصوری که صحبتاش بوده است. دلالت ثانی این کتابیشون محسوس دیگر صفحه 140 ششی به صفحه 140 دلالت و لحظ علاقان المعنى مرادند المتکلم به اراده استعمالیه این که این مراده متکلمه ای دلالت لظ الل متکعلم عراز تفیم حال معنا و استعمل اوفی این اصطلاح دلالت اگاه ازش تر چه به دلاارت استمالی گاهی تبدیل می دلالت دلالت تصد در کشطرش دلالت تشر تصویری در مرحله اراده استعممالی یا بیان مراج استمالی. بعدیون فرند که این دلالت س سماه انندقوم، به دلالت تصدیریه مورد از با مجموعه علمانی هستن که در این فنگ وارد شده حتی در منطق در منطق ذهنوارتون اگه باشه از تعدیر به قضایی میکنن نه دلالت تصدیریه خب یکیه واقع در این جهازی تو ذهن من از این تازه این ما حاضره نکرد اصل این کلمه که به عربی ترجمه شد به نظر هرموتوس اگر زبط کلمه درست رو ذهنم باشه یعنی لاتینش این فرمیلشتن چون من این وقت یونانی انگلیسی هم درست باید نیستیم اگر درست تلفظ کرده باشن در اصل لفظ یونانیش هرموتوس معنای که به عربی ترجمه شد در کتاب شکای شکر هم تو منطقه آمده ترجمه شده القول و شاره حالا این صلاح در ذهن باشه چون بعد یک جایی ما رو این صحبتی داریم این لحظ رو ترجمه کردن که ریشه همین که فعلی که در اروپا فعیلی متعارف شده فعلا همین لحظه یونانیست که چون من وارو به اشتفاقش گفته شده معناش به دقیق همین الگول و شارهه و که به حال این لحظه رو به هرگی ترجمه کردم مترجمین لغتی یونانی به نام حلقور و شابه این بعدها هم به اسم قضایا و اینجا هم که شما می‌بینید الان البته اینجا مردم استاد نیستند، بدی از, از اصول متأخر و غریب تعبیر رو دارن، تعبیر کردن به دلالت تشریحی. حالا اصلش اون تعبیر بوده که بوده. لعن درنا به دلالت الوزیه چون من استاد آده که مفردات ورزه ندارن نه به تدایی معانی حالا به تحبیر بنده یا دلالت خونسیه به تحبیر خودشان در اینکه خودشون خارج نشیم و اونی که ورزه شده همین دلالت است همین که مثلا گیریزه ساده است این ورزه شده مفرد ورز نشده کما عرب ما در این ورزه اجمال کلمات ایشان رو می و بعد را به او صحبت می و کیفکان پاهاده دلاله تحتاج اعراض کن, کن متکلم البته این دلالت احتیاج به اراده داره که متکلم در مقام باید تفلیم باشه نه بیان باشه ولی اگه خواب بود در حال خواب بود این ارزشی نداره و کزاله این دلالت متوقف است و اینکه قرینه نروشه مثل قرینه منتصف پس قرینه متصل در این دلالت مؤخره در دلالت تصریحی به نحو اراده استعمالی این خلاصه کلمات ایشان درباره این قسم دوم دلالت البته این مسئله که اینجا پر میدهن مطلب در درستی یعنی این دلالت به مراد استعمالی کار در درستی و بنای در منطق هم همینه که به همین دلالت استعمالی اعتقا بکنند اسمش هم دلالت تصویری گذاشتن این مطلبی که ایشون فرموندن که این پیش ما دلالت وزیری شما دلالت وزیریش آمده در تصوری هم میدونند اینچور نیسته ندونند اون مطلب هم جای خودشه دلالت, دلالت تصوری رو یا مدیوی تصوری رو, رو به نمبر برد میدونند حالا گفتیم ادهی هم رابطه تکریمی بایدن که توضیحاتش گذشت و در کلام به همین مقدار اکتفا کرده و سردش این است. اینا هر برای این بوده که متکلم هر چی که میخواد بیان بکنه و همین دلالت استعمالی بیان میکنه یه چیزی بعد حالیه این رو از محاقره خارج میگونن و همین مراد استعمالی مراد جدی هم هست یعنی این بحث که مثلا ممکن است این مراد استعمالی مراد جدی نباشه اصلا این بحث رو اعتنال نمی کنن از اینجا نیست اگر کل و انسان کاتر و به قوه میگن همینه کل معنی کل انسان و انسان کاتر و معنی کاتر و به قوه و منه, کاتبه، منه قوبه. یه نسبتی هم به اینها آمده به همون که در محل خودش گفته شده این که مراد باعث از احوال انسان خارج بشن این کلاف ظاهره اصلا این رو استعمال نمیکنن یعنی این چیزی رو بنا ندارن در کلماتشون به کار که مثلا من الان یک لحظه بگم که مرادم مراد جدی من چیز دیگری باشه این احتمال که مثلا اقلد کرده باشه مراد جدی شو نکرده باشه اصلا این جور احتمالات رو جو مخه نمیکنن نیمه حالا بگیم به اصل اقلایی نوبت به اصل نمیرسه یعنی کسی بنا بشه که یک صحبت بکنه کنه نصف کلام رو گیشت اصولا انسان شازی میدونن انسان خاصی میدونن که یک نوع لغت خاصی داره لغت نداره این با لغت صحبت نمی کنه. با فرهنگ عمومی صحبت نمی کنه این رو برش یه حالت خاصی آره لهم احتیاج به اصل عدم قبلت اصالات الالتفاق بی همه همه میگونن مطارب مردم همینه و در وحث های منطقی فلسفی بناشون اینه و لذا از کردیم اون بحثی که آمده که ما یه مراد داریم یه مراد استعمالی این بیشتر در متون قانونی آوردن بردن چون آم میاد ادعاشونه که آم میاد خاص میاد یا در متون مقدس استعدال دیگری که موتون مقدس هم چرا؟ چون در متون مقدس ممکن است ظاهر لحظه چیز باشه مراده یه پیشی دیگری باشه اصطلاق موتون مقدس هسته همین بحثه که ما مثلا داریم با ارمان تفسیر و تحویل و باطن و بطن و اطفن و این دور حرفا به کار بایم یک توضیح حرف میکنم علایه حال این مطلبی رو که مرموم استاد فرمودن که این مراد استعمالی این مراد استعمالی همون مراد جدی هم هست در متعارف علوم در فیزیک نمیان یک کانونوی نیستن مخصی در شیمی بیانه یا در جایی دیگه بیانه با از سال دیگه مثلا با این تصوری که امامیه دارن البته این تصور رو ما سابقا در بسید تخصیص توضیحاتی عرض کردی. که مثلا عام در زمان فهمبر اکم باشه یا مثلا در زمان امام صادق باشه یک دلیگه که از توفیات هست محلی باشه مثلا این رو متعارف کلام نیست از این جزو متعارف این باید بگیم یک تبدیل قادمه یک خصوصیتی نمیخواد بگیم این لغت لغت نیست یک لغت خاصیست اهل بید در پشار بودن در تقریه بودن زروف خاصی بود محصول مرمون سال هزار سال هزار تمام سال هزارت ما مشراس هر نیست ما تقریه هست بشون خود جرا یه کلمه گفته برای تمام بعد مشکلات حدیثی بخوریشون از تقییه علاقیه یه هست کل بریه تمام دلاغا و مشکلات داره تقییه این تقییه بوده که این مشکلات رو خب این ممکنه امکانش داره مشکل نداره اما این متعارف نیست در قلوم متدابله در غذای متدابله این متعارف نیست که مثلا یه مردی الان بیاد و اون قیدش و بیانش و توضیح بعد 10 سال بیاد بگیر این توضیح همونه الان هم اگر در قوانی تخصیص میاد به عنوان توضیح نیست مثلا میگن ما اول گفتیم که تجارت خارجی نیازی به قانون داره بعد از دو سه سال که این قانون شد با مشکلات میگن بله اصلی مواجهه اولیه ما با جامعه اون حزب این در حقیقت بعد از خامنه‌ای چیز جدیدیه، اون یه کلامیه، کلامه. اما این که شما بیارین یه کلامی که بر 20 سال، 30 سال، 7 سال،, سال، 50 سال اومده، بگین شارع اونه این تخطی تام شعر می‌گیریم، تغییر هم شعر این خیلی متعارف نیست. نمیخوام بگم محظور داره، ممنوع داره، ممنوع نیست. اما متعارف نیست این قضیه خاصی قائمه. و لذا شراره اکثر این در موارد خودمون اهل سنت اگر رجوع به سنت پیغمبر میکردن چون واقعا حالا تقلیدی نیست. تخصیصی نیست، بیانی نیست. و لذا اسالۃ پیش اونها واقعا به معنای نهی و بود واقعا. فکر داره. این توضیحات که من سابقا رسلم اساس درائر حتی ظاهرا در کلمات قدما اصحاب ما مثل مرحوم امینی さん همینطوره این اخباری ها بعد از زمان ملا محمد امین استرابادی و اشکالاتی دیگه اصولی با با این او که این مبوی اساطر درائر و مساله که اهل سنت در مسائل که ما لذا از زمان مثل لاهی دین ها بوده اساطر درائر رو به مزادره این نفی و گزاره است این خود اساطر درائر مثل پیش ما قلا ما الان اثاث البرائله رو نهی حقوق ظاهرا میدونن دیگه و لذاب مثل محمود ناریمی و بزرگان دیگر مؤخرا در حدیث سنن که 6 ساله حدیث متن شداسی اممتی رفع امتی در 5 6 رت رو واقعی میدونن در مالای علمون ظاهری میدونن چون دور لازم نیاز تفصیل لازم ندونن حرفی گفته شده که حالا چه اینجا نیست دقیق میفهمید اونا یعنی به خاطری اینکه رفت رو در اینجا به الا ظاهر کلمات اهل سنت رو اصافر برای و از خودم و ایما اصلا حکم آقا نه اینجا ظاهره توضیحاتش اینشالله سونا باید توصول همه به من فعلا وارد این بحث کلام استاد به طور پرسیده میشیم چون این به اصطلاح حس مطلب درسته حالای مقدار در اصطلاح بعد این نقطه دیگری ایشان پرمودن که این دلالت دلات بزئیه همین دلات تصویلیه این همون بحثی که من روزهای گذاشتم اشاره کردم ایشون دلات بزئیه و منحصر به مفاد جمله ترکیبی میدون راستم است. این اصل مثلا درسته اما این که دلالت مضمول تصوری در مرحله تصور این دلالت از انتظه نست و خطور این درست نیست این انصافا صحیح نیست در این که دلالت تابع اراده است، و یک مدلول تصویری خود دلان وقت مذردان یک مدلول تصویقی این درسته مطلب بسرین او بشر وقتی که اختراع کرد الفاظ رو گفت الفاظ جد خواه اختراع اساسش تفهیم بود و تصویق بود بعضها مسئله تصوری پیش آمد بله است. این نور کلام تو این مرحله یه تصوری آیا به مجرد خطوره یا نه اون هم به یک جوری از یک مدلول تصویری دارو بحث از از تصوره یعنی توضیحی داره که در نواست بحث بودش در مثلا آهان میگه یعنی درد باز شد آه ما این معنا به ذهن و خطور میکنه این آهان حقشون اینه, اینه خطوره. خب این نوع خطوره وکه خب یه مقتب به نظر من خیلی خلاف و جلانه. صحیحه که اگر در باز شد آبی معنا به ذهن ما خطور میکنه اما نگاه کردیم صدای در بیفنیم مراد از آب و مایع نیست رفتی به اون وازوگاه به خارجی هم همین لفظ آب را هم اگر از باز کردن در بشنویم خطور هست اما دلالت نیست از آدم خواب هم بشنویم خواب شده آب ما از این لحظه آب نمیفهمیم فهمیم معنای خسور میکنه این یک امر غیره خیالی هست این علبه تضایی معانی هستم روی توضیحش بذارش اما وقتی یک انسان عادی میگه آب ولو کلمه آب رو استعمال اون چون فرد انسان گفته ازش ما انتقال به معنا میکنیم این اینطور نیستی ما هر جا کلمه آب رو شنیدیم اون مدور تصوری بیاد یک خسوری میاند یعنی بنده من استاد بین شینن آب از یک انسان با شینن ها اصطلاح باشرن در فهم نگذا، بخلاف موجودی مثلا واقعا دراض بشنه درست است اون چیزی که بشر در ابتدا به فکر لغز بود، بوده، یک موجود تصریفی بوده، لكن از حدا به خاطر احاطه به خاطر که انسان مثل ایوان میشه تصرفات غیر ارادی بکنه. بعد نیاز به همین مفردات کار می‌کنه. چیزی که ما خودمون فکر می کنیم بعضی وقت چکمون مش فیک می فکر بعضی وقت چک دوم رو روش کم و می کنیم اگر جلو بزنیم مثلا فلسفه ای بر اون اجراش می این طبیعت انسانه. این اینجور نیست که ما واسه لذت و آبرو از دیوا چینی اون معنا بده به تعبیر میگم مرو مغایضم که اصولش داره اگر شما دیده باشید داروخانه، تابلوی داروخانه، خب برای دوکان که خوشی داروخانه کنید داروخان همین میرید توی بیابون، تابلوی توی تو بیابون افتادید بقید شما شده نیمیفنید، خطور می نه؟ در انها این بحث دیگری، بحث اینکه دلالت مطلقا تابع اراده هست چون دلالت وضعی طبیعتش یک طبیعت تصدیقیه، ببینید دو بحثه یعنی همین رابطه بین لبز و معنا خودش یک نهز تصویره یعنی این لبز به این معنا این خودش یک نهز این رابطه که ما اسمش تصویر رجوعی ناروست و لذا دلالت ورزی همیشه توش اراده هست اصل دلالت ورزی یک نوع دلالت تصویری هست لیکن دلالت تصویری ما دو جوره یه از میگیم زید قائم هست این یک جورش یه لحظه یعنی لحظه سی یعنی هیکل خارجی این اینم یه جزء در تصاویر این اصطلاح میشه در تصاویر استفاده میشه این سوال به یعنی این معنا یعنی نسبتی داره چیز اینی که در منطق قدیم و فلسفه قدیم این اصطلاح رو به کار بردن اینه طوریه که اینجا اجمالا رو از چه تفسیری شد دلالت ثالثو دلالت تصویری به نحو مراد جدی حالا یعنی ایشون مراد نشه بله اراده جدی این رو هم دلالت سالسه قرار در, در تحبیر ایشان البته این تعبیر تحبیر, تحبیر درستیست اولا ترس کردید انشاءالله هم توضیحاتش رو بعد ارزمی کنم اراده که یه اوقات ده همین معنی که الان گفتم یه قطعا مقلعایی اصلا خیر از این از دائره و خارجه اما گاهی مراده به اراده جدی یک معنای فراتر از اون مقدار مقبول لحظیه جدی اینه. این بخش مراد جدی یکی از بحثه بسیار اساسی در متون دینی است به طور کلی و در متون قانونی این خیلی سنگینه این بحث بحث سنگینش اینجاست البته این تعبیر به مراد جدی و مراد استعمالی تعبیر درستی در بعض از عبارات مثل مثلا آشایان اسلامی مفعول زادی و مفعول فعلی گرفتن اون هم همینظاهرن مرادشون از مفعول فعلی هم مراد جدی ذاتی هم همون هم در تصدیقی مراد استعمالی بعد حالا برای مطلب مروم و استاد من امروز و خلاصه بحثیشون رو می‌خونم. یه تعلیقات در حد کوچیک چون من خیلی مرایدم که اگر بناسی یک فکری مورد بردستی قرار بگیره نوشتاری دقیقا اون جایی که محل کلانه اون کار بشه روشن بشه که اشکال در کجاست به نهره مثلا کلی و مثلا بدون اینکه معلوم بشه چیه نباشیم ما افتدا هم ایشون رو همچین اجمال هم به همین که داریم نکنیم یه اشکالات یعنی توضیحات و اشکالاتی روی کلیات یعنی روی موارد عبارت ایشان هست اونا رو توضیح عرض می یه بحث کلی اون خودمون انجام می که این اراده جدی چیه و معیار در این اراده جدی اطلا چیه چون این که از بحث است که کلن در تاریخ معارف دینی حتی معارف دینی یهودی یا مسیحی یه سابقه ای داره در معارف دینی ما هم مثل تغییر و باطن و افتون و اینها دارای یک مندود خاص خودشه این بیان مراد جدی و اراده جدیه به نظر من اون حجرال اساس مباحث زواهره یعنی تمامه نقطه اساسی که ما در موارد زواهر داریم همین مراج جلیز که مشکل پیدا کرده، اون مدول تصویری یا تصوری معوط و معنای که گذشت، اینا خیلی مشکل درسته میکنن نمیخواد بگم اونا مشکل نداره. من کنناران م ب قت آیون، ما حتی در مدوول های تصوری خودمون هم اجماع داریم. که اینشاال توضیحش بعد ارزمان تو بحث وج زواهره ار میکنه. همین ل آب یاد آب روشن. خمیر داره نه مثلا وقتی اومدن یک جون نان های درست که این نان های که دراز خطرن واسه به سر زورت این نان گفته میشه یا گفته نمیشه آب یه کمی توش آب بریزه بشه آب بشه یا کمی زیادتر شور شور بشه خیلی شور بشه خب خیلی خاک زیاد بریزیم گل بشه آب نمیگن یه کمی بریزن میگه، یه مقدار متوسط همین بشه آب بگیم یا گل مثلا حتی الفاظ در مدلول تصوری هم همیشه با یه مشکل رو حالا سرش رو چند بار از فرمین بعد علاقه هم بیان میکنه کنه می حالا که این مشکلی که ما در مدلول جدی داریم تو روایات و تو مطون مقدس به اصطلاح درگیاشون یا مطون دینی اون سرش اینی که خود مفردات هم مشکل داره اینجور میست که مشکل مال حیرت ترکیبی باشد بین مراد استعمالی و مراد جدی این توضیحی که اجمالا عرض کردم مفاهیم و مدلولای تصوری که در علوم یا در صنعت امروز هست غالبا اینا ابهام ندارن مثلا آسترین ابهام نداره چون آسترین رو تعریف کردن با حتی نوشتن مثلا یک هزارم از ماده فلان 3000م از ماده تمام اون مواد تشکیل درندش مشخصه اگر اون مواد نباشه دیگه بهش آسلوی میگه اون چون مشخصه درسته؟ اما ما مشکل اساسیمون لغت و عرف گفته عرف هم به اصطلاح قیز از مشکلات زمانی پست و بلندی داره تسامح داره چون اون نکتی اساسیه در لغت من چند روزه ارزو کنم و تفهمه چون مختلی اساسی اینه میتونن اشخاص هم تموزیاز بکنند، فرس این آب به نظر آقا گله به نظر من آب این مشکل درست میکنم این یا نه این, این خاکی دویاد این گله از آبتان نمیشه دقیقونم این وقتی دوتا شد من وقتی دیگم آب دارم تفریم آب میکنم او از من تفهم آب نمی کنه <تصح> بگه مشکل اساسی در لغت چون دست ارخ آمد ارخ هم یک عرض عویز داره و زابطه لغت بودن باید تفریم و تفهم بشه یعنی من این معنا رو گفتم اراده کردم اون هم فهمید ببینید اون هم همینش چی من گفتم فهمید اون طرف مقابل بگه من فهمیدم چی گفت و اونی که من فهمیدم و همون من فهمان چهارتاییش مشهله این منشاء شده که الفاظ عرفی حتی در مقام ممدول تصوری چون ممدول تصریحی از خودش یک مشکلات دیگه داره در بنیاد ابهام داره لذا این بحث اراده جدی که ایشون در اینجا آوردن این بحث بسیار لطیف و دقیقی خب بعد ایشون فرمود در هی اللاتی که رؤوس مطالب ایشون رو می‌کنه چون فقط الان توضیح میدن کل مبحث اراده جدی و زوائد اراده جدی و آیا مثلا بتون بتونه صبع یا صبعین برای قرآن یا جزء مرادای جدی هست اصلا میلیار در مراد چیه میلیار در دلالت چیه این یکی از بحث‌های بسیار سنگینه که ما دیگه در اینجا منت یه مقداری در همین بحث ذیل اراده جدی مجبوریم توضیحات رو عرض بکنیم پس یه مقدار توضیح کلمات احلامه که ما متعارف در حوزه های ما فعلا از زمان شیخ انصاری به ما بعد اصطلاح یه مقدار هم اشاره تحریری که به ذهن میرسه و هي لتی تصن ما اندنا به دراست تصریفی از دلالت, دلالت وضعیه ایشون میگن دراست تصریفی مراد ما اینه در هر دو شد و اند القول کذا و هي متوقف چون این دلالت اراده جدی متوقف الان نصفه علا عدم نصف قرینت منفصله اون قرینه متصله تو مراد استعمالی رو بردم قرینه منفصله تو مراد جدی که قرینه منفصل نباشه. مزاحم الى عدم نصف و قرینه متصله اونو باید اول مراد استعمالی احراز بشه تا بعد مراد جبدی فهمده قرینت متصله، و این لبیه منفصله و این لبکان مانه اصلا تعلق الاراض الاستعمالیه فرقه در اینه, اینه و مست... منفصل رو مرمو مستاد کن بار در بحث آمو خاص هم متعرض شده اینجا متعرض شده که قرنه متصله تو دلات استعمالی تو اراده استعمالی تأثیل داره و قرنه متصله تو اراده جدی بعد ایشون میفرماید درسته اما به هر قرینه منفصله کاشفه که اراده جدی من چیه و حقیقتا مراد جدی من چیه و ایشون میفهمن که این منفصله مانع از انعقاد ظهور نیست برای صلاح ظهور منعقد میشه مثلا اکثر کل حالت این کلام برای ظهور منعقد میشه مثلا حجت نیست حجت بعد از قرینه منفصل اگه گفت لا که خوشاغل علما حجت این مقداره بعد مانعتن انحجیت زهور این مسئله بود که سابنان ایشان تکرار فهمدن پرارن و دفعه اولا نیست بعد می که پهلاً الى امرز مراض المتکلم به انعلمه علمه ادم و نسخل غیرمت منفصله اگر گرشتیم و غیرمت منفصل پیدا نگردیم خب احس میکنیم بلایشان و اما ازا شک پیم ای اگر شک کردی در ارغواردین یعنی بوته ارادی چی، نه مراد استعماری. فمرجع الشک الى احد الامرين الا ابال عدم انقاض ظهور الكلام. چه کلام ظهور نداره. دوم استعمال عدم كون ظاهر مراد جدی اندر این ابزار مرادش اهم از استعمال جدی در اول چون می همین کلام. اما اذا كان الشك في المراد لعدم انقاض ظهور الكلام فشرم شک به احد اموری از این امور سگانه منشأ شک است در انعقاد ظهور یک انما عدم العلم بالموضوع الا مثلا این آب گفته آب بیار اما میدونی این آب مثلا تازه فارسیال گرفته عرب بوده درست کلمی آب رو قدم یعنی به عدم علم بالموضوع الا فلم یقر المعتزله ظهور و ما احتمال قرینیت موجود مثلا این گفته آب سر مثلا یه چیزی گفته احتمال قرینه باشه او احتمال وجود قرینه این مجموعه سه تا یا قرینیت موجوده یا وجود قرینه است و جامعه بین این دو صورت هو احتمال مانه انزهور برمیده به احتمال مانع. پس خود علم به بعد این محتضی قرینیت موجود یا وجود قرین هم مانه سوا امکان به احتمال مانعیت موجود هم. فه امکان از شکف المراد ناشعن من عدم الالم به الموضوع نهد فلا اشکال فی خورم لبز مجمله خب معلومه که اگر انسان موضوع لحب برد نبود لبز مجمل میشه غیر ظاهر فیشه ظهوری برایش منعقد نمیشه که این ظهور که ایشون میفهمند در اینجا غیر ظاهر فیشه مراد اون ظهوری نیست که به اصطلاق ظهوری یعنی که به نحر جد بخوایم به اون اصفت بریم لفظ ظهور داره چونیشون منکره درازه ظهور لفظ و من این شما با طاقه توضیح بر عرض کنم که روشن بشه مراد جدی چیه کنم الان توضیح دیدیم از ب و مرجعی خویل اصل عملی یعنی به عبارت اخرى از کردیم اصولین ما برنامه شون اینه که اگر ما در کلام گریشه کردیم تا یک نوع اصل لحظی جاری بشیم مثل اساس الهیه اساس آدم قرینه اپتدا هم بیاین اصول لحظی برمیگردیم اگر اصل لحظی نشد برنمیگردی به اصل عملی حالا از عملي استفاده برای اتلافاله هستم موردی که پیش آمده. وقت در مانع اگر شک ما در این باشه که آیا ایشون اصلا لغت بلده یا نه اینجا دیگه اصل لحظی که این عباده ظهور بکنه نداریم نمیتونیم اصل لحظیم. چون اصل ظهور روشن نیست مختصری شده است لذا باید برگردیم در اصول عملیه و کدر حال فی ما اذاکان شک و ناشن به احتمال قرینیت موجود اینجا هم همینجوره باز برگردیم به اصل عملی. مثلا به انیخون الکلام محتفا کلام پیچیده است به ماییست لحول القرینیه و مثالی که ایشون میزنن که ما فل امر الواقع این مقام توخم الهند اگر در جای توخم یا وجود حضر منع بوده شارع امر بکنه خود این مقام یک قرینیه که حمده بر وجوب نکنیم بگیم اثبات وجود نمیشه این مطلب امر واقع در مقام تبع هم هست جزء مباحث و خصوصی درست هست. تری مباحث صحیح هست. البته این دو تا است. یکی واقعاً هزاری هست پدران ساله اشرورلرو فستابو. یعنی به اصطلاح خود هزار ذکر شده. یکی تبع هم هستره. فعلاً هر از دلایش دو که نه پدران ساله اشرورش چی فسیوکل از چیز یه و اونم هر سلبسته مثال ادا حالتون درست بله و زمیر راجع الى بعض افراد عام یا زمینی که برگرده به بعض افراد ها ما در مراحض خودش توضیح دادیم این بحث نظر ما بحث اصولی نیست چرا چون از کنیم معیار در بحث اصولی این است که یک جاری در عرف باشه این ای که ما یک آم بیاریم و زنی رو به بعضیش برگردیم قطعا کلامه عرفی نیست مثلا دیگه علما دیشب منزل من آمدن و با آنها گفتند، با آنها یعنی به خصوص مثلا نحویین مثلا نحویین بودن، باها بودن، اصولین آنها یعنی خصوص... این ارفی نیست، قطعا چین کلامه عرفی نیست و اگر در مورد آیه مبارکه و متلقات سر بسمه به کار برده شده این موردیه ما چرا را حرف کردیم مطالبی که موردیست نباشه اصول بیان باسه همون که قلبشه اصلا فرقه به این او هر اینطوره هرچی که موردیستی محبش شده اصول چه قادر درمه وقتی استعمال میشه چه چون چه مورد به این ممکن مورد به بیدنه مورد به درمه بخش مورد به درمه لگه این بحث اصولی نیست مضاحباً از کل این که در حالی مبارک اختلافی شده این بیشتر گفت که این اختلاف مدرسه است این شواهد موجود تلا و تلطم و متلقه در برآن تماما در مرشی به کاردازه شده نه در بامه. نظام خود کلام هم زرورش در مطلقهات رجیه از. این اصلا شواهد قرآنی داره ولی ازا این مورد به نظر ما که فرموزن و زمین راجلا برز افراد الان این هم به نظر ما روشن نیست یعنی عرفی نیست و شما عرفی نیست اگر در یک موردی هم کسی گفت شمیه لغت و معمّا و توریه و تقییه و اینجور چیزاست. یعنی به طور مساره ما اینجور صحبت نمیدیم که اگر آم بیاریم برز زمین رو به برز از افرادش و یکی از تو محاض توریهی باشه تقییهی باشه میخواییم ب با حالی میشه بیدیدیم که خلاس مطمئن خودمون یه مشکلی به الله به طور طبیعی این جزء کلام نیست به خلاف همه در مقام طبعه همه هست اون جزء کلامه اون هست اون نظائر داره, در, نظائر داره در, لغت در قانون نظائر داره اما این یکی نظائر نداره در ارخی هم نیست اگر هم باشه موردیه باید موردی هستشو کنیم نه پی خصوص ماه داران کلام محتفن به ماهی و دلقریمیه از مجاز و بحیقون الهر دارن بین محن الحقیقی و مجازی این بس چرا آمده چه خوده بود؟ سود هم آمده که اگر در کلام ماهی اسلاح و بود شک در دلقریمیتش گفتن مرجعش بین معنی مجازی و حقیقی و اصل او اغلایی در این حساس الحقیقه به شکنی مختلف و با توابیر مختلف از قدیم که بوده در بیشترین بسی الان در استاد مثل ترازم یا سرازمان واضی هم. تو بحث حجید و واحد نگو همینه اصاف حیقت بینیم مردم سیم و یا اصاف عدم آخرین یا این ها اصلا نیستن حدود دیگه دارن یکی اندار این سریعی این, این بود این بحث لطیفیه ایشون گفت بعد بله. اگر اینجوری شد این خود نابند اصاف حیقت به نفسا و حجتون حالا ایشون به تحبیر به نفسا و حجتون رو بلیگر تحبیر کردند. در مقابل این هو جهت تعبودی ابندستها یعنی در جایی که نهزاده ظهور بشه این ابندستها در مقابل ظهور ما انسات نهاییه چیزی نداریم انسات که نارجعشون انجام چیزی دوست ما انسات در مقابل این یعنی نه اصل یعنی یعنی شما ما شک کردیم که کلام حتی زوهر به خاطر شما می تویین برساز رحیزه به عنوان تحبود و قلعایی تحبودن تمثل بکنه. به نفسه ها ببینید به نامازت اعلام اعباد زهور. این اعباد زهود تفسیر به نفسه ها. حالا دوچه یه مرمون مستاد تحبیر به نفسه ها داره. ازده یه تحبیر حجت تحبودیه. مورد از حجتن تعبودی یعنی برای شما ظهور بیاد یا نگر داریم به هم در حقیقا این حجتن تعبودیه به نفسان یعنی اما رقی درمون اینه که نه ما چیز اونام عطاق رحیقه اوشنام نمیدونیم اون چه که ما داریم انعاد زور برای کلامه کلام باید یک حقیق دارسته که انعاد زور بشه ما نمیتونیم با یک حقیق اقلاقی در جایی که احراض مختصی شده این اقاض زهور رو تعبودن اصفاد بکنیم بلا, بلا حاجت نهار اقاض زهور کمانون شد به لفت سید المرتضا از که این مطلب آیا مراد سید المرتضایی این هست به چیز دیگر ایست یه مقلب بخش هم هست ما باید سهرفاز کردیم این جو باید نمیشیم باید در همون جو مراجعه بشه در این کتاب هم اشاراتی داد در حاشی نسخه اشاراتی و بعضی از س انصافت خود برونی سیزمونت داره تو به کلی داره خاص خودشه این آقای خود به حتی شافیه ایشان که در کلامه که انصافت هم کتاب بسیار مفید و متاسفانه خوب چاپ نشده ارزش این کتاب روشن نشده چون قاضی ارز و جنبای که از رزرگان محتضلت کتاب بسیار سنگیری داره که ازشان هم که چاپ شده ارزمونی 20 جلده جلد بیستم در امامتی این اشرافی جلد جلده بیستونه ادعا می توانید کتابش خودش در افت چهارسن بوده میکنن حالا چهارسن ازار برقه بوده سبا خواهد مطلب بینیسه چهارسن ازار چند می می کتاب می شدن خواهد سرخال می دونه راست دروبه برهاد فعلا این کتاب که مرحوم سید مرتضا در اشعاری خودش رد کرده بر این کتاب بر جلد بیستم این کتاب که واقعا این کتاب سید مرتضا ادهی از جهات ارزش دارد نه یک جهت واده که نیم خوانم بارده لیکن به حال تو خود کتاب اشافی یا از ذریعه یا از ذخیره اصلا سید مرتضا یک عدفیات خاص خودشه تا کسی آشنانشه چون خودشون شاعر بسیار قدید و دشواره تو گفتو شعر عرب شعر اشعار شاعرهای بنی شده انصافا سید ابوالزهر بسیار شعر قوی داره شعر رضی که ذره اشعر باشه و باشه باشه بسیار بسیار شعر قوی و زیواری داره میشن و خود سید رضی هم یک حقایق و داره سید رضی چهار تفسیره از کل که بر کلمات ادبیات مرمون سید رجی روشن نیست اما تو اون احباقا چرا؟ اونم یه لغت خاص خودش این رو آیان خوب دقیقه بکنن ارمه از آمدن آله بوبهی به بغداد و وجود بزرگان نحوی ها یعنی که اصلاحاً محتر بغداد هم تقریباً یا اوجشه مثل ابن جهنی یا اولیه پارسیونها واقعا اصلا یک محیط ادبی خاصی به بغداد داده یه لغت خاص علمی خود نجاشی هم همینطوره چه چیزی تو نیست فرستش نه در رجال نیست فرستش حالا که ادبیات چنگینی نداره اما نجاشی ادبیات چنگینی داره چه موضوع ادبیات خاص خودشه ولی چیزی یکی من الان جواز بحث نمی‌شم چون یک ولی مهداد برگش با ادبیات چه موضوع آشنا شد مثلا نحوه استعمال و مثلا معنی شگفت مفکینه ادبیات نداره. کرده یک کمی شبیه چه موضوعه اما خیلی پاینکر یک متن ادبی در اون زمان متن ادبی علمی دارای ضوابط خودش بود اول قرن پنجم و اواخر قرن شارم انصافا یک تعبیرات خاص خودش داره که احتیاج به موازنه دیگه داره که من اونم وارد نشو باز من به حد به ساق اشاره عبارات مرحوم استاد و ان لم داره که اما وقتی ما چیزی ما اساس الحقیقه نداری البته این بحث رو بعد از من عرض می‌کنم کما هو صحیح از حساب تو به بنائ الاغلاق و به ظاهر یعنی کلام باید انعقاد ظهور بشه لد عمل و به اصالت حیره ما انعقاد ظهور ذل کلام فیکون کلام ایزن این ایزن ایشون بعد به هر چی سطح گفتن یا اجمال به جهت حضور در مقتضی یا وجود مانه این هم تا حالا در وجود مانع بود این زن کمانی که در مختصی باشه مجمعن لازهوره لحوله یو خلده بعد بردم بحثی دیگری کردن که اگرم قالب به کلام سید رو نوزه روشیم در جوی که از سحبه خرید نمیشون کرد. و چون کلام مجاز نیست این هم بحثش بزرش دیگه تکرار فرک و اما امکان شکل ناشعن من احتمال وجود قرینه نه قرمیت موجود فهوه هرا قسمه لن من احتمال سارتن یکون و امرن داخلی هم کما از احتمال قبلت المتکلم ان نصر قرینه او قبلت سامن بله و اخرها یکون و خارجی من تمام باید این بخواهم آنهایی برد مراجعه کدن دیدم من همه از من که کامل نمونم امرن خارجی هم کما اضافه به و احتمال سقوط قرینه نمی دانند اما دسمال اول که شک احتمال بدیم قرینه ای بوده و نگفته فلا ریکیه تحقق بناء الاغلا الا عدم الاعتناب الاحتمال به مجرد احتمال قرینه احتمال اعتناء نمی کنه با اینکه لا ابتداا که ما ذکر و صاحب شفای من مع به اشراح اصول فقه عدم قرینه بود بسیار شباهد اصالت ازم غیرن روشین هم بحثه اینشالله برطورین ده لند موردن به ناروخلا ولی اخضو به ظاهر حالا خود من اثباتی اولاً به اجراع اصالت ازم غیرن سمت بخور به حجیتی اینکه ما اولاً اجرا اصالت ازم غیرن بکنیم و بعدم به حجیت این یه بناهایی داره که برد ارز کنیم و هم من بسمو سانی که احتمال تفتیق بدیم فرمشروفیه من حد مول اعتنال اعتنال نمی کنیم الا اندال محقق القومی خود سر رو که بعد عبارتشو می کنیم رضان الله تعالی من افید من از اصل به ما و لبز و ظاهر الان تقدیر حده من وجود و قدرت واقع و بنا علیه انتظار باب علمی در افکان بود چرا دلیلشم به وقوع تصفیف الاخبار من مستان میگم این مطلب کبراش خوبه اگه واقعا احتمال تختیری باشه نمیشه کم از سکر کنیم حالا بعدی شبی دادن وقتاً تمام شده دیگه نمی کنم ایوان الا انه ها علی مقام غیر سریعه تطریقش درست نیست و لا تون تجه انصداد علمی خیل احکام چرا؟ من لما دکن را من ان المقتعین الاخبار کانو آرفین به اسلوب الاخبار تلاه چون این تحصیل در مثلا فرسین بزرگان اصحاب انجام بده اینا آرد بودن فلا تقفا علیه مول قرار ندار لعل المراد حسب ما و چون آنه اینم کاشی اضافه می چون بحث بحث حدیثه و می دونستن تأکید شارع رو در حدیث حضرت فرسون فعلمو انه حدیثکن هازا دینون و و انه تأخذون دینکن حدیث بین از یک طرف اینا بودن، از یک طرف اینا آرفه به کلام بودن. وصاقت و جلالتشون مانه از این که هم در این کار کرده باشن، قرد کرده باشن، قرد این رو، هم به کلام مانه از این از ترگیم نفهم میدن. پس این تقریق مزرق نیست. این خلاصه اشکال استاد یعنی سغراش درست نیست. البته مرموم استاد در اینجا بحث تختیر و همین بحث کهروی و کلی اجمالا بیان فرمودن و دقیقا نمیدونیم مرادیشان چیم ما توی بحث تا در همون در حدود از 10 سال پیش 6 سال پیش بیشم در آز در سال پیش مرتبط تختیر رو در روایات ما مفصل بررسی کردیم متعرض شدیم و شاید نظر مرموم استاد به تختیراتی سیده بهار یا واقعی یا وسائل آمده ما اونجا توضیح داریم که یک تختیعاتی در مسادر متختل ما شده این خیلی آسانی مشکل نداره چون فراسون تختی حدیث کافی کرده برمین به کافی هدیس فیضا بگیر مشکل نداره این خیلی آسانی یک تختیعهایی در کافی آمده اونها یک داد ماشکله خود کافی حدیث رو تختی کرده یک تختی اینجا مشکله یک تختیعهایی در به اسطلاح مسادر قبل از کافی آمده که اون اشتره میگم چون استاد محس کبرهی فرمودن جلو رفتن و بدون اینجه توجه باشه که تفصیه به عنوان کلی نیست این در حدیث ما تا در همه کتاب حسن محروم تفصیه شده اون خیلی مشکله اون مسادر اولیه مشکل کار که اینها توجه ها نکردن تو اون مسادر همولیه گای تفصیه شده و اما این که ایشون فرمودن که اصحاب ما آرفه راست این مطلب هست ما ادهی از موارد تختی چه خیلی آدم افتداعا فیال میکنه که خیلی وحشتناک باقی اثر بکنه در معنا دیگه جاشت وقتش اینجا نیست اصحابه هم اثر نکرده اما در ادهی موارد چرا اثر کرده و اصولاً موارد تختیع ما فرم میکنه یک نواق نیستن حتی به هم فر کافی یک جور تقریبی یک جور فقیری یک جور باز از کجا گرفتن این بحثای خاص خود و شده این بحث تقریب جداگانه در مواحث ما آمده و ما به مناسبت این که از علال تا آرز رو همین در اونجا متعرضه شدیم و انصابه بحث سنگینی هم با محفظ قومی افتداعا بحث سنگینی اما سنگینی بحث این معنا نیست که شبههی دار همه میکنه اصلا پنگ درست دونه که قابل حل نماشید اما بره ها قابل حل هم هست و من به همین مقرد جای اکتفاق میکنم چون وارد این بحث میخوانی باشید چون حدث ما فقط این بود که اشارات آبره به کلمات مرحوم استاد اینه که ایشون با دفع کلمه بخوان تفقیه رد بکنن نه اینجور میزین سلامه علا محمد